بی مهر رخت رو روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است انگام وداع توز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است میرفت رفت خیال توز چشم منو می گفت قیهات از این گوشه که معمور نمانده است. وصل تو عجل راز سرم دور همی داشت از دولت تو کنون دور نمانده است. نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید دور از رختین خسته رنجور نمانده است. صبر است مرا چار هجران تو لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گوخون جگر ریز که معذور نمانده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گوخون جگر ریز که معذور نمانده حافظ قم از گریه نفرداخت بخنده ماتم زده را دائیه سور نمانده